صوفی بیا که خرقه سالوس برکشیم وین نقش زرق را خط بتلان برسرکشیم نظر و فتوح سومعه در وجه مینه دلق ریا به آب خرابات برکشیم فردا اگر نروزه‌ی رزوان به ما دهند قلمان روز ز روزه جنت به در بیرون جهیم سرخوش از بزم صوفیان قارت کنیم باده و شاهد ببرکشیم اشارت کنیم ورنه به حسرت کشندمان روزی که رخت جان به جهانی دیگر کشیم اشارت کنیم ورنه به حسرت کوشندمان روزی که رخت جان به جهانی دیگر کشیم سر خدا که در تطوق غیب منزویست مستانه اشنغاب زرخصار برکشی کو جلویز ابروی او تا چو ماه نو گوی سپهر در خم چوگان زر کشی حافظ نه حد ماست چون این لاف ها زدن پای از گریم خیش چرا بیشتر کشی